<تصفيق> سلام مثلا ساعت به وقت ترکیه 23 و 10 دقیقه چیز 10 دقیقه ده دقیق دازی سال بود یه سالی که خیلی بار رو داشت. صحبت کردن ها بحر کردن ها آشنا شدن ها نشناختن ها یه هفته شناختن ها دور شدن ها از پشت یه آیدی اعتماد کردن ها نفهمیدن ها بودن ها نبودن ها تنهایی یا غربت. غربت تو غربت مثل اون عید تا عید ایرانی که جایزه میده به همه غربت تو غربت مثل ما غربت تو غربت مثل شما غربت تو وطن حالی حد درقلش هستیم حد درقلش اینه که باز یه نفسی میاد و یه چیزی که پس میدیم گواهه یه زندگی هست چون زمان گواهی بودن من که میتونیم بودن رو فریاد نه اینطوری طوری زمزمه کنیم. چون دیگه نیاز نیست خارج از ایران داد بزنم که من کی هستم تو کی هستی یک سال گذشت یک سال تکراری چند سال پیش ایه. که نه و دیگه سال پیش همیشه وقتی میپرسیدن که برای عید چه برنامه داری همیشه میگفتم پنجمین این ساله که دور از خانواده عید رو میرم بیرون یعنی میرم سفر دیگه نمیدونستم که شاید آخرین سالیه که تو ایران هستم و, و نخواهم تونست که حتی تو ایران دور از خانواده باشم دورتر از ایران دورتر از خونوادم هم هستن بیشتر از 13 ساعت به تحویل سال 9 نمونده هرچند زیاد به این فرمالیت بازی ها بگم نمیدونم به این روتین ها علاقه ندارم ولی جزء جدا نشدنی یک فرهنگ هستش خوشحال هستم که چیز رو با خودم حمل میکنم که خیلی ها ندارن. تحویل سال نو من برابر با تحویل سال نو طبیعت هستش. خیلی اتفاق افتاد. خیلی چیزها تو این یک سال برای خیلی هامون رخ داد. ولی سال 92 رو با آرزوی رنگین کمونی بودن هممون با آرزوی نداشتن هیچ مناغشه ای بین هیچ یک از قشرهایی که حداقل در الحامی بچه هایی همجنس که را الژی هستن آرزو دارم با آرزوی این که تمام عزیزانی که صداهامون رو میشنوند با آرزوی این که تمام عزیزانی که تو فیسبوک توییتر توی وببللاگ توی ها که توی... سایت هایی که هداقل میتونن پیام های بچه های هم ها رو بگوشه گوش هم جنسکر ها و یا حتی هم جنسکر ها بوسونن یه موفقیت خاصی به م ب... جایی بسیار بسیار لایقی برسه چونکه چند بار این رو حداقت با خودم تکرار کردم خوشحالم از اینکه دیگه کلمه همجنس باز تکرار نمیشه خوشحالم از اینکه به اون میگن همجنس جنس خوشحالم از اینکه هست تیمو هستم و خواهم بود موردی نداره امیدوارم پای بند بودن به روابط بیشتر از این نباشه امیدوارم. لایق بودم به روابط بیشتر از این باشه امیدوارم تحمل ها بیشتر از این باشه امیدوارم پایبندی به روابط بر اساس زواهر نباشه امیدوارم هیچ اتفاقی که حاکم بربدی ها باشه برامون رخ نده برای تمام عزیزان برای همی عزیزانی که جامعه همجنس گرایان توی جامعه الژی بی تی بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ انتظاری فقط به خاطر اون درون خودشون فعالیت میکنن از همهشون تک تک تشکر میکنم. به جایگاه خودم شخص خودم از این شخصی که اسمی برم خیلیاتون نمیشناسین هایریه هستش اهل ترکیه هستش از انجیوهی کاوس ازش تشکر میکنم آدم به حداقل اینطوری بگم کسی که بیشتر باور دارمون تا این که تردمون کنم از آرش بینش پژوه، از محسود ایرانی از ساقی قهرمان از شادی امین از نوی ترک از, از همه ها و از آرشام و خیلی ها که هر چند در حد یک اپسیلون ولی تأثیر به سیزایی توی سرنوشت خیلی از بچه ها داشتن وقتی پروفایل خیلی از بچه ها رو باز میکنم و می بینم که تاریخ تولدشون چون 1990 به پایین هستش ولی میدونن دونن که هستش یه خوشحال میشم چون موقعی که من ایران بودم وقتی به هر کسی میگفتم گی یه دیدگاه خاصی داشت ولی الان حداقل اقل میدونی که گی چی هستش و چطوری میتونه با اون کنار بیاد یا نیاد کاری ندارم در کل امیدوارم سالی که در رومون هست که از فردا ساعت دوانیم فکر کنم شروع بشه سالی پر از مهر سالی پر از صلح، سالی پر از رنگین کمان، سالی پر از آرامش، سالی پر از آسایش و بدون اضطراب و در نهایت سالی برای ما باشه. و در این بین نمیخوام سهم پدر مادرها رو من نشمارم پدر مادری که منو آفرید تا به افتخار بتونم میگم که هم جنس هستم همشون رو دوست دارم از دست همشون میبوسم و یه جورایی مدیونشون هستم چه پدر مادر خودم چه پدر مادرای هستن که هستن خیلی وقت حرف نزدم چون مشغول خیلی کارهایی هستم که باید برای گذران زندگی با اونها باشم و گذران زندگی طبیعتاً گاهی جهیت پیدا میکنه دوستتون دارم کمیل عزیز رو پژمان رو و همه عزیزانی که حداقل چه حالت اینترنتی با همون با همین با همی هستیم و خیلی چیزایی دیگه ولی در کل اینو میتونم بگم خوشحالم که هستم خوشحالم که با بودنم حداقل یه سی سالانی از وقت روزانی شما رو میتونم بگیرم حالا چه به ابتال وقت یا چه به وری از وقت دوستتون دارم و امیدوارم اون روزی فرا برسه که بدون اینکه هیچ مشکلی باشه خودم رو داد بزنم، خودم رو فریاد بزنم از تمام عزیزانی که تو این یک سال به هر تو کنار من بودن تشکر می کنم و امیدوارم که به هر نحوی هستش به هر نحوی هستش این مرزهای فیزیکی جغرافیایی شکسته بشه تا بتونیم آزادانه خودمون باشیم دوستتون دارم سال نوتون مبارک امیدوارم همیشه سالم و خورسند باشین خودم از دوستانو خواستم که حرف بزنن توی بکراند صداشون بیاد چون آزاد هستم من نمیتونم اونا رو محدود بین کنم که حرف نزنن همیشه شاد باشین, باشین. سال نو مبارک